روی بین مای و وجود خودم از یاد ببر خرمن سوختگان را همه گو باد ببر ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا گو بیا سیل غم و خانز بنیاد ببر زلف چون انبر خامش که ببوید حیحات ای دل خام تمه این سخن از یاد ببر سینه بو شعله آتشکده فاست بکش دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر دولت پیر مغان با که باقی سهل است دیگری گو برو و نام من از یاد ببر سعی ناورده در این راه به جایی نرسید مزدگر می تلوی تاعت استاد ببرد روز مرگم نفسی وعده دیدار بده وانگه هم تا به لحت فارغ و آزاد ببرد دوش می گفت به مجگان درازت بکشم یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببرد برو از درگهش این نالو و فریاد ببر